بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين والآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته فقد قسمت فقط أسلوبش وقنا بحث قبوليات كما قلت ركن السبومة كلمة لا إله إلا الله قبوليات زد شرد بإنقياض قويباندي زد شتركة زد پذیرش رد کردن که انسان بیاد رد بکنه ما مثال هرقل رو بزنیم مثال ابو طالب رو زدیم. که قبول کردن و میدونستان حتی هرقل زبانان هم اقرار کرد و لیکن رد کرد از باب ترسش از از قومش و از اون رهبانی که بودن که تاثیر تو رو بکشند. اما بحث ایمان به ملائکه خداوند ملائکه اصل کلمه ملائکه در لغت از الوت گرفته شده به معنای رسالت در لغت عرب استفاده میشه به معنای رسالت به معنی و به طور جمع مفردیش گفته میشه ملک و جمع گفته میشه ملائکه ما شک نداریم که ملائکه افرادی مخلوق خداوند خلقت کرده که فرمان بردارش بشن بدون چونو چرا بدون اختیار همون طور خداوند میگید و من عنده و من عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده كلمه منى كنيسه انكسرت نازا خداونده لا يستكبرون عن عبادته عباده خدا استكبارا يردن ان هميشه در عبادت و ولا يستحسرون ونه هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون نه هم قسميش نماو المساناء كنار ميجون از عبادت خداوند اين رحاتیان که اوصافی که در قرآن اومده و در سنت اومده نسبت به ملائکه خداوند یکی دو تا نیست اصلا خداوند میگه لا یعصون الله ما امره لا یعصون الله عصیانت از امر خدا نمی کنه سرپیچی یعنی چی اختیار ندارن یعنی کاملا مطیع خداوندن کاملا در اختیار خداوندن اینها اوصاف از افراد یک افرادی که خداوند به طور خاص خلقتشون کرده خداوند وقتی که بحث خلقت آدم می میگه از گله آفرید ما ابلیس از آتش آفریده، و در حدیث صحیح مدنی ترا صلی الله نور علیه و آله بیان میکنه که ابلیس از آتش آفریده شده انسان از خواب و ملائکه از نور ملائکه از نور آفریده شدن حالا این چه نوریه مثل جبرئیل علیه السلام که شسته بال داره این چه نوریه یک قلب داره خداوند اثبات قلب براشون میکنه حتی اذا فزع عن یا اثبات دست براشون میکنه و ملائکه تو اثبات به رسول میکنه اثبات بالا رفتن و پایین اومدن ابلاغ وحی از خداوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم چه جبرائیل خدا رو می اینها رو ما باید بهشون اعتقاد داشته باشیم ایمان داشته باشیم اما اینکه ما بگیم ملائکه ما میتونیم تصور بکنیم مثل همین پیام های اینترنتی و موبایلی و نمیدونم رسانه‌ای باشه بیا انکار بکنه اصل وجود ملائکه این نقد قرآن رو کرده خداوند اوصافی که به ملائکه میده اوصاف جمادات است، بلکه اوصاف یک مخلوقاتی که توان حرف زدن و سخن گفتن و جاهایی هم خداوند بهشون ازها اجازه اظهار نظر رو داده قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا ملائكه اتجعل فيها جاهایی خداوند حق اختیار و سخن گفتن بهشون داده حرف بزنه از خودشون هست. در دفع خودشون نظر نظر بکنه. پس این مسئله خیلی مهمی هست. که اگر ما بیاییم بگیم که این ملائکه چنانچه در قرآن و سنت وست بشونه من این ملائکه رو قبول ندارم و این اوصافی که اومده به خاطر عقب افتادگی صحابه بوده ولی الان زمانه عوض شده و ما رسانه ها رو داریم که میبینیم میدونیم که برخلاف واقعیته برخلاف حس خودمونه با سرعت برم پرباز بکنم بیام پایین و از نور باشن تو ذهن ما نمی گنجه ایچین اوصافی برای یک مخلوقی که جرم نیست حجم نداره وزن نداره ماده نیست ما اینچین چیزی نمیتونیم قبول بکنیم کسانی بودن کتاب ها رو نوشتن که اینها نقض ایمان رو کردن نقض ایمان رو کردن نقض یکی از ارکان ایمان که نقض کل ایمانه اما یکفر براللهی و ملاکشه. چه کفر به خداوند، چه کفر به ملاکش نمی کنه کافر فقط این نیست که بگه من خدا را قبول ندارم، بلکه اون کسی که میگه ملائکه خدا را قبول ندارد، پیامبران خدا را قبول ندارم کتاب‌های آسمانی را قبول ندارم کسی حتی اگر بگه تورات را قبول ندارد، انجیل که در قرآن می‌ذل ز به عیسی هم انجیل را قبول قرآن. ببین انجیل رو قبول ندارم اصل انجیلی که خدا نازل کرده برای هدایت بشریت این شخص کافر شده عذری درش نیست کسی که قرآن میکنه کسی که اهل قرآنه اما گفتن اگر کسی نمیدونه از قرآن هیچ اطلاعی نداره اینجوری حرفی بزنه شو از معذور باشه اون عذرت میشه خداوند ولی که کسانی از بین ما میان در رد قرآن ذدیت با قرآن اینجوری این حرفها و رو به میان میارن اینها وارد اسلام نشدن بلکه کافرن با آن چیزی که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده ایمانه به ملاکه چنانت شیخ من عثیمین رحمه الله یاد میکنه برای خودش اصولی داره برای خودش یعنی ضوابط خاص خودش رو داره مثلا به فرس در بحث چیزی که ما باید نسبت ملاکه اصباب اجمالش مجملن نه به تفسیل مجملن ما بخوام بگیم کسان ایمامی داشته باشیم که اونها خلقه بیشمار خدای. مخلوقاتی که قابل شمارش نیستن. که رسول صلی الله علیه و می فرماین روزانه افتاد هزار نفر از اونها وارد بیت المعمول میشن، سر به سجده و عبادت میذارن که دوباره برده می هر روز افتاد هزار نفر هر روز. تعدادشون بیشمار یا نه قابل شمارش نیست. ملائکه خداوند، جلود خداوند، سربازان خداوند، یکی دوتا نیستن که ما بخوام بشماری نشون. ایمان داشته باشیم به اون ملائکه خاص خداوند از بین این همه ملائکه مثل جبرئیل صاحب بحر، یا میکائیل یا اسرافی، صاحب سور، و دیگر ملائکه ای که از بحر خاص. حالا شاید اصلا بعضی از مفسرین، باشون بلغزه، بعدی از ملائکه را اینطور بکنم مثل حالوت ماروز، اختلاف زنید. این درش هست که آیا ملائکه بودن نبودن که صحیح اینه که دو تا ملائکه خداوندن که از باب امتحان برای محافظ استاده شدن ولی که ما بقی از ملائکه خداوند که یا اسمشون اومده یا فعلشون ما باید اونها ایمان داشته باشیم ایمان به اون اوصافی که دارن ایمان به عددشون امترداد زیادشون ایمان به اون افراد خاصی که نامشون اومده و افعال خاصی که خ یکی میخواد درستور بدم دیگری مسخر عبرها هست مثل رعد و سب بخواه رعد و به رعد فرشته رعد داری و میکائل داری و دیگر ملائکه ای که مثلا بالفرض معموریتشون باران باریدنه و وجیدن باده معموریتشون نوشتن اعمال ماست ما یلفظو من قولت الا لديه رقیب عتیب اده تلقه المتلقیان واسی خدا میگه علی الیرمین و علی الشمال فعیل خب رقیب عتیب تو خاصه یا منکر و نکیب که در قبر میان از بنده سؤال میپرسن که انجا اصل خرافت الاصول بر چه اساسیه؟ بخاطر اصل این کتابی که دویشه شده بخاطر اصلا اصلش از اون سؤال منکر و نکیبی که در قبل از بنده میپرسند درباره پروردگارت درباره دین کلام میخونیم و بعد میاد درباره ایمان تو به پیامبر خدا دیگه یک اص مونده که ما که نخوندیم که خواهیم خوند درباره ایمانمون به خداوند که قبلا مفصل گفتیم و بعدم الان درباره دین اسلام داریم میخونیم شما دین اسلام در قبل از ما میپرسند اون کارو خداوند این ماموریت رو بهشون میده وقتی که ما در قبر ما رو به منکر و نکر بر سرمون چند ساعت شاید در یک آن هزاران نفر توی قبر بکنن خدا میدونه ما نمیدونیم چون خداوند سروازان زیادی داره ملکی بیشماری داره خدا میدونه که چجوریه خداوند این ملک الموت بهش قدرت رو داده که ارواح رو در یک آن قبض بکنه و منکر و نکری که در یک آن از هزاران نفر سوال بپرسن و این ملائکه شاید به شکل آدمیزاد گاهی در بیان مثل الان مثلا کمی جلوتر اگر بخوام بریم میاد حدیث جبرئیل که به شکل شخصی فردی میاد بایجو که نوره در شکل یک فردی که آثار سفر برش نبود میاد زنوب زنوب در سلاساتونم بیشیده این ایمان با داشته باشی که قابلیت تشکر رو دارم و من کلموتم قبلا وقتی که میامد تفضی روح بکنم به شکل انسان در میومت و میومد روح طرف را می میکشید این خلاصه اون چیزهایی که ما باید ایمان داشته باشید به ملائکه خداوند هرچند که خیلی زیاده مثلا ما بخوام مثلا اعمال خاص ملائکه رو بگیم تصفیهشون تحلیلشون تکویرشون طلب استخبارشون برای کسانی که حلقه ذکر میزنن ك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمون قوية يجلسون في يذكرون الله إلا وحثهم الملائكة حثهم الملائكة ملاك جير دجير منحذق عليهم السكينة وغشياتهم الرحمه مجدو تزك كير دجير ليش ملاكين كير ميزان ما تلعب السفران بروايتهم ما ديم يكونان بريونها ان هذا فضلكان هم مكانة طالب عال این عبادتی که انجام میده در راستای علم کلمه توفی لا اله الا الله این که از وقت خودش زده خاطر خداش هسته از یک طرفی اهمیت طالب علم ارزش دادن به اون مکانتش و از طرفی دیگه بحث حب ملائکه نسبت به مؤمنین برای اونها به مؤمنین دوست دارن و میان گردا اون طلاب علم حلقه می زنن موالات دارن به مؤمنین حریصم بر جلسات الزب حریصم بر طلب علم بر جلسات علمی خدا مسخرشون کرده اینها افعال خاصی هست افعال خاصی که ملائکه دارن در جاهای خاصی بعضی از ملائکه داریم در نبرد از انسان دفاع میکنن یا در جاهای دیگه خداوند برای حفظ انسان گذاشته که اون ملائکه بیاد از انسان دفاع بکنه الله ثم قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ت افراد خاصی از منوی که را میفرسته برای دفاع از انسان یعنی ای بنی آدم ای مؤمن حقیقی ای مسلمان تسریم شده خداوند نترف من از اون بالا میبینم و میشنوم و از اون پاینم کسانی دارم که بفرستم برای حفظ شما احفظ الله ای خدا را حفظ کن تا خدا تو را حفظ بکنه اینها به عدعای خداوندیه سربازانی دارد که از ماها حفظ بکنه و همچنان میفرسته ای طالب علم فات نلغزه ای طالب علم کوتاه نیا بدان خدا با توست خدا تو را تایید میکنه خدا تو را حفظ, حفظ میکنه هرچنکه ملاکه خدابند این ملاکه هایی که در این دنیا ما میشناسیم تنها نیستن بلکه ملاکه هایی هستن در روز آخره مالک جهنم و نبیدونم کسانی که سیر عرش خدا ایستادن که عرش خدا را حمل میکنن از اون ملایکه که قابل سر از عجبتشون چه عظیمن که سخف ها اونم عرش خداوند که بیان حملش میکنن چقدر عظیمن مخلوقات خداونده. سخف آفرینیش این زمین در مقابل کرشی یک میلون بار دیستره نقطه نقطه در فضا و آسمون ببینیم شبها هر کدوم میلیاردها بار از این زمین مزرگتره همین ها اول تا په دومه خدا اینکه برسه آخر عرش اخرش هم عرش خداوند نیست ملائکه‌ای هستن که عرش رو حمل میکنن او يحمل العرش یعنی که چقدر عظیمه که عرش عزيما الرحمن رو این عظمت خلقت خداوند همین جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله و ادنا که بین مشرق و مغرب بیبین از عظمتش که 600 تا داشت دو بار رسولا می او رو دیدن خیلی عظیم خلق عظیمی شاید به شکل یک سردی در بیاد ولی که اصل خلقش آفرینشش ششش خلق خیلی بزرگی بوده چه نتیجه ای داره؟ سمرات این چیزها رو ما گفتیم از اسماشون، از افعالشون، از عددشون چه سمره ای داره؟ اولی سمرش به عظمت خدا من پی خدا عظیمه. چه مخلوقاتی را خداوند خلقت کرده که ما نمی بینیم و این همه کارهای احیم را زمان انجام میدن. این کارهای عظیم بزرگ که و بر اون بزرگ خالق یک کار را می میشه که ما شکر و سپاس خدا بگوییم ما مؤمنی چون لطف خدا را بزرم در خود ما می بینیم خداوند بر ما طلاب علم تو معنی نازل کرد ما با شکر خدا را بگوییم احساس راحتی می قرآن در مقابل قرآن در مقابل دین خدا. حاضر نیستیم الان به خاطر ماشینی به خاطر نمیدونم مال و منالی دین خودم رو بفروشیم هیچ کدوم از ما راضی نیست بگم بهتری ماشین دنیا رو ببینیم ولی کف بگو کافر بشو هیچ کدوم از ما راضی نمیشه چرا راضی نمیشه؟ چون ارزش دین رو لمس کردین ارزش حلقات علم رو لمس کردین آیات قرآن رو فهمیدیم در کردیم اینها خود به خود همش سبب میشه که ما شکرگزار و سپاسگزار خدا باشیم در مقابل حفظش نسبت به ما که ما را دارن حفظ میکنن در مقابل ایمانمون استقامتی که الان نمیت بر ما نازل بشه بخواد مثلا به بر ما یا مثلا بخواد حجوم بر ما بکنه اینها همه حفظ خداوند هستن از طرف خداوند برای این حلقات ذکر و از جمله سمرات ایمان به ملائکه از اون اگر بخوام یاد بکنیم از اون چیزی که سبب میشه که مثلا بدف یاریم یعنی از ایمان ملائکه یعنی اون چیزی که سبب یعنی از سمرات و از, اه از اهدافی که خدا داشته در از خلق ملائکه اگر بخوام یاد بکنیم، بحث محبت موالات دو طرفی ماها نسبت ملائکه که گرد آگرد موالا حلقه دارند که نمیبینیمشون و حب آنها نسبت به ما ولایت دو طرفه محبت طرف ماها دوستشون داریم اونها ماها رو دوست دارن خداوند خلقشون کرده که خوشحال بشن در مقابل عبادت ما دوست داشته باشن مؤمنی خداوند وقتی که مؤمن را دوست می‌داره، صدا میدن ای جبرئیل، من فلانی را دوست دارم او را دوست داشته باش. سپس جبرئیل فریاد میدن در آسمانها ای ملائکه. فلانی را دوست داشته باشید که الله متعال او را دوست دارد و خداون محبتش را بین آدمیان می دارد. این ولایت که یه ولایت خداون نسبت به معبود نسبت به اون ببخشید نسبت به اون مخلوق نسبت به اون بنده و ولایت و محبت ملائکی هم نسبت به اون خصوصا جبرئیل نسبت به اون شخصی که محبت الله را داره. از این محبت متقابل این سمر رو و این نتیجه رو میده. چه تا معظمی راهنمای الله بعد از این مباحثی از بحث سمرات که سمرات و اهداف ایمان ملایکه رو یاد می‌کنن میاد میگه که وقعاً آن کرقوهم من الزاغی زاغ زائ زائیین کون الملائكة أجساماً و قالوا إنهم عبارة عن قوة الخير الكاملة في المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى والسنة رسوله صل الله عليه وسلم وجمع المسلمين این اشخاص مدعی حقیقتاً آنها انکار کردند. می‌گن مرجج حقیقی باشه. ما گفتیم یک نیروی خارق‌العاده است. وجود نداره، ماهیت نداره. یک نیروی خارق‌العاده میگه این تثلیب قرآن خداست و سنت رسول الله صلی الله و سلم و اجماع مسلمانان. بعد میقیاخ ذکر میکنید که الحمدلله الذي فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه المثنى والثلاثه والربعه. چی میگه است؟ خدا داره بار را بار بر اثر ذکر میکنه ال اجنحا صاحب بال دو بار سه بار چهار بار تا جبرئیل که شصت بار ل ر وقال ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم ادبارهم بحث اثبات الزدن نسبت به ملائکه ولو ترى الظالمون في غمرات الموج والملائكه باسط ايديهم اخرجوا انفسكم باسطوا ايديهم اثبات الذات اثبات الذات برای ملائکه وقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وقال في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب دخولوا قروج السلطة الملائكة دخولوا به سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إنها سفاتها في القرآن أو في سنة ممدد مثلا رسول صلى الله عليه وسلم اشخاصی که وارد مستد میشن تا اینکه امام برای منبر نرفته مینویسن تا اینکه که امام بر سر منبر اگر رفت دخترها را میبندن فیده جلس الامام و طاق و صحف و جاوی استمیحون از و میان که اون ذکر را بشنوند اون خطبه را بشنوند اثبات شنیدن میشنوند بلایی که میشنوند و مینویسن اثبات نوشتن اینها اوصافی هست که نسبت به این مخلوق اومده دا ما باید نسبت به اون ایمان داشته باشیم فعلا به همین قد اتفاق می کنیم در اصل ایمان به که تا دیگه به اصل ایمان به کتاب های آسمانی